نگاه کردن به عروس یا به سال نامزد جائز هست یک بار نگاه کردن جای. اما نباید رو برنامه باشه تشریفاتی نباید باشه اللہ امرو خبر میدی که امرو انگوشتر میاریم فردا خبر ما برای دیدر میائیم اینجوری جائز نیست اینجوری رائش هم نیست چون اگر با برنامه تشویق میشود، خانم با برنامه تشویق میآوری، و یک کیلو روانو بر استفاده و از این چیزهای بیزندی، یک گریبه کامل میکنه، چراش با ظاهر میشه. بعد هاک ببینی که بدون این حال تجدید میکنیم. و دیدن ناگهانی باشه، با ناگهانی ببینی، اینکه تماس بگیری با داری برای نگاه کردن میاییم دیگه، این کارها اشتباه سرگرم ما به ابیش پی نمیبری، و ناگهانی اونو ببینی. حالا دیدن اینجوریه الله رب العالمین در قرآن می فرماند که فنکه ما تاب لکن من النسا مثل ما وصله سروبا بگیرید نکاح کنی خانوی شما او رو پسند کرده اید برای خوب باشه دو تا ستا چارتا حالا اینجا پرمونه ما تاب لکن اون چی پسندش بیکنید اول ببینید تا پسند کنید خود این آیه می اول باید ببینید تا پسند کنید داخل صحیح بخاری حدیث دارین که خانمی آمد پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتن یا رسول اللہ من خدا برایش وا بخشیدم خود را هبه کرده منو بگیر نبی کی دو نگاه کرد از پایین تا بالا کاو نگاه کرد بعد دیگه سرو برگردوند که تو نخواستم اینجا نبی کی نگاهش کرد یک صحابی ها یا رسول ما رفتن ازنی از انصار بگیرم فرمود رو دیدی گفت بله گفت جوری رفت بالا درخت خرما اونجا رفتن طبقه بالا داخل خونه دیدم دیگه مشاهده گفت که علبرو که یک شخصی به ارسطو میخواست زنی انصار ارثار گورو دستهاشو ببین صورتشو ببین تو چشمه های انصار و دستارقی می ایب دارن تا ایبشو ببینی پس باید دیره بشه یک بار دیره بشه حقش از اما نه روبر مبه ناگهانی باشه با نبریزه نکنید چون هرگز با ایبها جوشما ظاهر نمی شود